ستون شکسته انگار صد سالی هست که پشت به ستون شکسته در خانه چهار زانو نشسته است حالت خوبه ابو یعقوب در خانه از جا کنده شده است سقف دالان ریخته است بده برات بپیچم ابو یعقوب توتون تون تو دامن دشت‌هاش دست ساد میلرزه ابو یعقوب بده بپیچم لجنه نکن صدای کامیون است دور سر چهارراه کج کرده از تو خیابان توپ لوله بلندی را یدک میکشد لوله توپ انگار به تیرک کج برق میساید دیگر نیست صدای کامیون نمی آید. باید از قهف خانه صلواتی رد شده باشد سیگار ناشتا ابو یعقوب دلت ضعف میره. کبریت میکشد. پک میزند. صرفه میکند. دمجنبانه که ابلغی مینشیند رو سیم سرگردان برق. گلوله توپ دیوار خانه را کوبیده است. تاقشه های لطم دیده ی اتاق پیداست. صدای انفجار میآید. از دور خفه و گنگ. دمجنبانک میپرد خسته نشدی ابو یعقوب؟ انگار به زمین چسبیده است انگار به ستون شکسته چسبیده است دلت حف نکرد؟ اقل کم برو کنار شت ابو یعقوب پل شناور قرار است سربازی با کلاش قدم میزند میرود تا نیمه پل لحظاتی درنگ میکند به اطراف سر میگرداند و برمیگردد کرخه تاب ندارد دو اردک اردهای سینه بر آب میسایند پل تن سنگین را بر آب میکوبد سرباز دیگر دور آن سر پل ایستاده است آسمان صاف و روشن است دور طرف غرب از جایی دود برمیخیزد حته مقدم جپک از بستان گذشت پرنده ها پیدا شدند یه چیزی بگو ابو یعقوب خاک سر سیگار خود به خود می ریزد. شارب ابو زرد زرد است حتی جا به جا میزند. می قرارگاه از روبرو می‌آید. با گل استتار شده است دود سیگار تو سبیل ابو گرفتار می شبد. بعد، نرم نرمک رها می شود از پنجره پاترول صدای کسی می آید صدا جوان است تو تونه تمام نشد ابو یعقوب نه عزیزم تا فردادارم صدای جوان با پاترول دور می شود برات میارم، ابو یعقوب بی خیالش ابو یعقوب یکو گردن می کشد بر می گردد به شکم دریده دیوار رو گوش تیز می کند آفتاب سهرگاهی از قاب شکسته پنجره زده است تو اتاق رو دیوارها جای ترکش هست، جای گلوله هست پس برو قهوه خونه ی پیاله چای بخور صدای تیاره میآید، فانتوم یا میگ دو خط سفید موازی دود بر آسمان جا می ماند بعد انفجاری سنگین است باید توپ ضد هوایی باشد زمین شاید می لرزد. کامیونی می راننده دستکان می دهد رافدینشو زدیم ابو یقوب ابو یعقوب می خندد دندانهاش درشت و زرد است کامیون از کنار تانک تی هفتاد و دو رو بدنه تانک جابجا جا شعار هست کف خیابان آشولاش است. جابجا جا کندال و جابجا جا کیسه های ماسه تانک کج شده است رو پیاده رو زمین پر است از پوکه فشنگ دیوارها پر است از جای ترکش نارنجک و رگبار مسلسل شنی تانک پار است و کلاهکش یکبر است خیلی حوصله داری ابو یعقوب خسته نشدی په سیگار را پیش پا خاموش می کند. بعد تخم چشمانش می گردند و بی حرکت می شوند ها نبو یعقوب چی شده؟ جابجا به چهار جا می شود. چرخ را پیش می کشد. زیر گونه هایش چین میافتد. دندان روی هم میفشارد و پیچ چرخ را سفت می کند کی براد ساختش ابو یعقوب؟ کرسی است بر چهارچرخ آهنی باد میآید بوی باروت میآورد خس و خاشاک را کف خیابان میکشد بال چفیه ابویعقوب بازی میکند نباید برمیگشتی ابویعقوب این شهر خالی پرنده‌ای مینشیند رولوله ی بلند توپ کج شده تانک، باید سبز غبا باشد به با اطراف گردن میکشد اقلن تو اردوگاه تنها نبودی تنها نیست. ام یعقوب هست، ثمره و سمیلا هستند، ربیعه هم هست. کجا ابو یعقوب؟ کوپ هست قبرستان بعد از گور جمعی سربازان عراقی است. بواظب باش ابو یعقوب. کوره راه کوبیده است. گلوله عمل نکرده زیاد است. بر هر گور جمعی تخت پارهی بر پارهی چوبی میخ شده است. زور تند آفتاب، تخته ها را شکافته است و باران شماره ها را نشانه های سربازان را بر تخته ها شسته است کوره راه از میان الفزار زار می رود. مینه عمل نکرده ابو یعقوب تله انفجاری دور پوزه سرخ زنگ زده تراکتوری از لای علفها بیرون زده است دورتر نیزار است بلند و سبز قسیلی صدای کرک می آید قبر ام یعقوب قبرستان پیش از نگیزار است دو چکاوک رو علمک یکی از گورهای جمعی بیقرارند نر و ماده هستند صدای کشتار بوغ میآید آید ابو چانه از سینه می کند وانت قهوه خانه است بلخیر ابو یعقوب پنت سالم عزیزم نیومدی ناش را بخوری؟ بعدم میام عزیزم به وانت نگاه میکند تا از مقابل مدرسه میگذرد. در آهنی مدرسه در هم پیچیده است چشم از وانت می گیرد. باز به شکم دریده اتاق گوشتیز می کند نه صدایی نیست قوطی سیگار را از زمین بر می باز میگذاردش زمین تو جیپا دنبال چیزی میگردد. لااقل گاوه پیدا کن ابو یعقوب گاو می شاخه های آب تو نیزارها انگار بی انتهاست. هنوز جیب ها را می گردد. باشون سرگرد میشی ابوی ابو یعقوب تو این شهر خراب گاو ها به آب می زنند گاو می به آب می زنند دیوانه شدند بم. پوزه ی حیوان یک لحظه از دل نیزار جهش می کند. شاخ ها یک لحظه سرگردانند بعد حیوان سقوط می کند ها رم می و نیزار را می‌کوبند. بوی خون دیوانشان کرده است نرم خندی بر لب خشک ابویعقوب یقوب می نشیند پیدایش کردی ابو یعقوب؟ دستش با مداد رنگی نصف نیمه از جیب بقل بیرون می‌آید. سرخوابی سرخابی است ابو یعقوب. عبوی عقوب آخر بلند شو برو قعب خونه برو لب شد برو تو سبزههای های نفسی تازه کن دلدی هوایی بخوره بوی بارود تند می شود صدای انفجار تند می شود بعد سکوت است بعد صدای نازک کسی می آید. شتاب زده و بلند ترسیده است بابا ابو یعقوب جاکن می شود، مداد را میگذارد تو جیب. قوتی سیگار ابو یعقوب، یادت نره؟ خم می شود به چهار چرخه، دستش می لرزد. موی بلند، تیره و پریشان یعقوب از شکم دریده اتاق پیداست. خواب دیده است. بابا، دیوار منفجر می شود، ترکش ها جا به جا، جا، هزار جا، دیوارهای اتاق را قلبکن کن می کنند. سمره، سمیلا، ام یعقوب، ربیعه، بوم! دو دست کوچک یعقوب، سرگردان بر لبه کرسی شکسته دیوار اتاق، دنبال پار آجوری می تا محکم باشد، که بگیرد و برخیزد. زد. ابو یعقوب چار چرخ را پیش می راند. لبخند می زند. دست پاچه است انگار سبا حال یعقوب انگار است، انگار نشنید است لبانش سنگین روی هم نشسته است ابو یعقوب دو بازوی لرزانش را میگیرد و از پس کرسی شکسته دیوار او را بالا میکشد و سینه را به سینه می و بو می کشد دامن دشتاشه یعقوب از زانو باد می خورد خالی است یعقوب قرق خون است ام یعقوب دست می تا برخیزد دست سقوط می کند بر نمی خیزد بابا ولی بله عزیزم یعقوب را می نشاند رو چار چرخه باید از انبار منفجر شده مهمات بگذرد قلم سرخابی بالای سر یعقوب دست به دست می شود ابو یعقوب لبخند می زند پیش از مدرسه دکان قصابی است. شقه خشک و سیاه گوسفندی به نشپیل آویزان است. بوم! ابو یقوب از جا کنده می شود. ساتور را می کوبد به کنده و پاتوند می کند. بوم! دیوار و اتاق ریخته است. سقف دالان ریخته است. بوم! بابا! عزیزم! تلخی یا درد کودکی را از پوست نازک های یعقوب رانده است. نگهدار می ایستاد. لرزش انگار زیر پوست صورت یعقوب بازی می‌کند. نگاه یعقوب تلخ است. تابلوی مدرسه مشبک است. صد گلوله بیشتر خورده است. ناگهان چیزی سوت می‌کشد و از بالای سر می‌گذرد. و بعد لحظه بعد از دور دورتر از انبار مخروبه مهمات صدای انفجار میآید و ستون شکسته خانه ابویعقوب فرو می‌ریزد و لطه های شکسته در پرواز می و خاک بر